پادشاه و مار خوابگزار داستان نقل شده از احمد رحمانی از مرو تپه یکی بود یکی نبود در زمانهای قدیم پادشاهی بر سرزمینی حکومت میکرد و عدل و انصاف را رعایت میکرد یه شب پادشاه خواب عجیبی دید اون خواب دید که از آسمون یک ریز روباه داره میباره هراسون از خواب پرید و سعی کرد خوابش رو تعبیر کنه اما عقلش به جایی نرسید. وزیراش رو صدا کرد و خوابش رو با در میون گذاشت. اونها هم از تعبیر خواب پادشاه عاجز موندن. بالاخره یکی از وزیرا رو به پادشاه کرد و گفت: "قبله عالم تعبیر خواب نکار وزیرهاست و نه در توان اونا. من پیرمردی را شناسم که تو تعبیر خواب رو دست نداره بهتر اون رو برای تعبیر خواب شما به قصر بیاریم به دستور پادشاه پیرمرد خوابگذار رو به قصر شاهانه آوردن پیرمرد با شنیدن خواب پادشاه به فکر فرو رفت پس از مدتی فکر کردن سرش رو بالا آورد و رو به پادشاه گفت برای تعبیر خواب قبله عالم چند روزی مهلت میخوام پادشاه سه روز به پیرمرد مهلت داد و به اون وعده داد در صورت تعبیر درست خواب انعام خوبی بهش بده پیرمرد به خونه برگشت یه روز گذشت ولی پیرمرد نتونست تعبیر درستی رو برای خواب پیدا کنه دومین روز هم گذشت سومین روز پیرمرد فهمید تعبیر خواب به این راحتی هم نیست پس ناامید و ناراحت به طرف قصر رفت وقتی یاد وعدههای پادشاه میافتاد بیشتر به خودش فشار میآورد و تعبیرهای مختلفی رو مرور میکرد اما هیچ کدوم قانع کننده نبودند همونطوری که فکر میکرد و طرف قصر میرفت چشمش به ماری افتاد که زیر آفتاب چمبره زده بود پیرمرد بدون توجه به مار از کنارش گذشت ناگهان صدای مار رو شنید که میگفت آهای پیرمرد چرا اینطور به فکر فرو رفتی پیرمرد آهی کشید و گفت پادشاه خواب عجیبی دیده و از من خواسته ظرف مهلت سه روز تعبیرش کنم حالا سه روز گذشته و دارم به طرف قصر میرم بدون اینکه تعبیر برای خوابش داشته باشم مار پرسید مگه پادشاه چه خوابی دیده پیرمرد گفت پادشاه خواب دیده از آسمون یه ریز داره روباه میباره مار خندید و گفت پادشاه در قبال تعبیر خواب وعدهایم داده فیرمات جواب داد: آره، هدیه های زیادی وعده داده که با گرفتنش میتونم زندگی راحتی داشته باشم. مار دوباره خندید و گفت: تعبیر این خواب که خیلی راحته. اگه نصف پاداشی رو که میگیری برای من بیاری، منم تعبیر رو بهت میگم. پیرمرد گفت: اگر تعبیر خواب رو بگی، نصف که چیزی نیست، تمام پاداش رو به تو میدم. مار گفت: به پادشاه بگو تعبیر خواب اینه که تو سرزمینش مردم چاپلوس و روباه صفت و حیلگر و حق باز زیاد میشه. اونا به اسم پادشاه مردم رو فرید میدن و آسایش و آرامش رو ازشون میگیرن. پیرمرد از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد. به طرف قصر رفت و دید که پادشاه بی صبرانه منتظرشه. پیرمرد با خوشحالی خواب پادشاه را تعبیر کرد پادشاه پس از شنیدن تعبیر خواب به فکر فرو رفت بعد یک خورجین طلا و جواهر به پیرمرد پاداش داد پیرمرد خورجین رو به دوش گرفت و به طرف خونش رفت وسط راه یادش افتاد که به مار قولی داده بود ولی وقتی درخشش جواهرات رو دید با خودش گفت طلاو و جواهر به چه درد مار میخوره من میتونم با اینا تا آخر عمر راحت و آسوده زندگی کنم پس راهش را از لونه مار کچ کرد و به خونه رفت چند سال از این ماجرا گذشت یه شب پادشاه بار دیگه خواب عجیبی دید اون خواب دید از آسمون یه ریز داره گرگ میباره باز هم وزیرا و اطرافیان پادشاه نتونستن خواب اون رو تعبیر کنند. پادشاه این بار هم پیرمرد رو به قصر برد. خوابش رو برای اون تعریف کرد و تعبیرش را از اون خواست. پیرمرد بار دیگه سه روز از پادشاه مهلت گرفت و به خونه رفت ولی هرچی فکر کرد تعبیر خواب به ذهنش نیومد. اون وقت به یاد مار خواب افتاد. با خودش گفت بهتر پیش مار برم و این بار هم ازش درخواست کنم او با این فکر طرف لونه مار رفت وقتی به اونجا رسید مار بیرون از لونه داشت پرسه میزد وقتی چشم مار به پیرمرد افتاد گفت حالت چطوره پیرمرد بازم که پریشون احوالی پیرمرد فکر کرد عجب مار مهربونی انگار ننگار که قبلا فریبش داده بودم نزدیکتر رفت و گفت پادشاه باز خواب عجیبی دیده این بار خواب دیده که از آسمون داره گورگ می‌باره مار کمی فکر کرد چرخی زد و گفت اگه این بار نصف هدیه پادشاه رو برام بیاری جواب تعبیر خواب رو میگم پیرمرد فوری گفت قبوله این بار همه انعام پادشاه رو برای تو میارم تا جبران گذشته بشه مار نزدیک پیرمرد رفت نگاهی به اون انداخت و گفت به پادشاه بگو بارش گرگ نشونه اینه که تو سرزمین اون مردمان گرگ صفت زیاد میشه اگه مواظب به اوضاع اطرافش نباشه اونا مردم رو تارمار مار پس لازمه که پادشاه با اونا قاطعانه برخورد کنه. پیرمرد با خوشحالی طرف قصر پادشاه رفت و مثل دفعه قبل تعبیر خواب رو گفت. پادشاه دستور داد این بار انعام بیشتری به اون بدن. پیرمرد انعام رو گرفت و طرف خونه را افتاد. توی راه فکر کرد این بار انعام پادشاه بیشتر از دفعه قبله. اگه همش رو به مار بدم چیزی برای خودم نمیمونه. بهتر اون رو بکشم تا تمام انعام مال خودم بشه و خیالمم از بابت مار راحت بشه. اون با این تصمیم به طرف لونه مار راه افتاد مار جلو لونش منتظر بود وقتی پیرمرد به مار نزدیک شد یک یکباره شمشیرش را از غلاف بیرون کشید و به طرف مار حمله کرد مار پیچ و تابی خورد و سری داخل لونش رفت اما شمشیر پیرمرد قسمتی از دومش رو برید پیرمرد به گمان اینکه مار را کشته با خوشحالی به طرف خونه رفت مدت زیادی از این ماجرا نگذشته بود که چند مامور به خونه پیرمرد اومدن و گفتن پادشاه خواب دیده و از تو خاسته برای تعبیر اون به قصر بیای پیرمرد به ناچار همراه اونا به قصر رفت وقتی به قصر رسید پادشاه رو طبق معمول منتظر دید پادشاه به پیرمرد گفت این بار هم خواب عجیبی دیدم خواب دیدم که از آسمون داره گوسفند میواره پیرمرد مرد این بار هم مهلت سر روزه گرفت و به خونش برگشت. هرچی فکر کرد نتونست خواب پادشاه را تعبیر کنه به یاد مار خواب افتاد و از رفتاری که با اون کرده بود سخت پشیمون شد. مهلت سر تموم شد و پیرمرد ناامید به طرف قصر رفت. وقتی بلونه مار رسید و دید سر حال و سرزنده است نمیتونست بترسه یا خوشحالی کنه. لحظه صورتش گل انداخت اما دوباره شرمگین و خجل سرش رو پایین انداخت مار با دوم بریدهاش جلو لوناش نشسته بود پیرمرد رو که دید با خوش روی جلوتر اومد و گفت باز چه اتفاقی افتاده پیرمرد که از خجالت توان حرف زدن نداشت سرش رو پایین انداخت و گفت از کاری که نسبت با تو کردم پشیمونم حالا نمیدونم چطوری ازت عذر عذرخواهی کنم و جبرانش کنم مار گفت: حالا بگو چه اتفاقی افتاده؟ پیرمرد گفت: « پادشاه دوباره خواب دیده از آسمون داره گوسفند میباره. مار مثل بارای قبل چرخی دور لونش زد و گفت: تعبیر این خواب خیلی خوبه. برو پیش پادشاه بگو دیگه نگران چیزی نباشه چرا که مردم سرزمینش با انصاف شدن. از این به بعد مردم مثل گوسفند و مطیع شدن و هر کس به حق خودش قانه؟ پیرمرد با شنیدن تعبیر خواب پادشاه خودش رو دوون دوون به قصر رسوند و تعبیر خواب رو برای اون گفت. پادشاه از این موضوع خیلی خوشحال شد و دستور داد این بار بیشتر از دفعه‌های قبل به پیرمرد طلا و جواهر بدن. پیرمرد کیسه انعام رو به دوش کشید و با خوشحالی به طرف لونه مار رفت. اونجا که رسید تمام کیسه رو جلوی لونه مار گذاشت داد زد: آهای دوست خوبم بیا بیرون این بار تموم طلا و جواهرات را به تو میدم مار با شنیدن صدای پیرمرد از لونش بیرون خزید و نگاهی به کیسه طلا و جواهرات انداخت چرخی دور اونا زد و گفت اینا که به درد من نمیخوره همش مال خودت پیرمرد از حرف مار تعجب کرد و گفت پس چرا هر بار در قبال تعبیر خواب نیمی از انعام پادشاه رو میخواستی مار گفت برای اینکه درستی تعبیر خواب به خودم ثابت بشه چرا که هر بار خودت نمونه از اون تعبیر بودی مار حرفش رو ادامه داد بار اول مثل روباه من رو فریب دادی و زدی زیر قولت بار دوم مثل گرگ وحشی شدی و به قصد کشتن به من حمله کردی اما این بار مثل گوسفندی آروم به حق خودت قانع شدی و صادقانه سهم من را آوردی پیر مرد که تازه متوجه حقایق شده بود به فکر فرو رفت پشیمون از کارهای گذشته از مار خداحافظی کرد و کیسی جواهرات رو به دوش کشید و به خونه رفت کانال تلگرامی هزار افسان. داستان‌های افسانه‌ای ای نشانی کانال تلگرامی تی مهران <مهراندوستی> نشانی وبلاگ ما m BFA نقط مهران دوستی. blogva.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستی.